هر آن کو خاطر مجموع او یار نازنین دارد سعادت همدم او گشت و دولت همنشین دارد حریم عشق را در گهبسی بالاتر از عقل است کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد دهان تنگ شیرینش مگر ملک سلیمان است که نقش خاتم لعلش جهان زیر نگین دارد لب لعل و خط مشکین چوانش هست و اینش هست بنازم نازم خود را که حسنش آن و این دارد لب لعل و خط مشکین چوانش هست و اینش هست به دلبر خود را که حسنش آن و این دارد به خاری من گریمون امزعیفان و نحیفان را که صدر مجلس اشرت گدای رهنشین دارد چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان که دوران ناتوانه ها وسی زیر زمین دارد سلاگردان جان و تند دعای مستمندان است که بیند خیر از آن خیرمن که ننگ از خوش چین دارد سبا از عشق من رمزی بگو با آن شه خوبان که صد جمشید و کیخسرو غلام کمترین دارد وگر گوید نمیخواهم چو حافظ عاشق مفلس بگویدش که Sultani gedai am nishindaurat